چطور همت خودمون رو در دینداری و تقوا بالا ببریم؟ با عمل کردن با دوری از گناه انسان ایمانش تقویت میشه و تلاشش بیشتر میشه جذابیت کارهای خوب براش بیشتر میشه عمل ایمان میاره و ایمان عمل بیشتر میاره